ریچل یک شنبه چهار آگست دو صبح این یکی فرق داره کابوسی که امروز صبح باش از خواب بیدار شدم توی اون کابوس من کار اشتباهی انجام دادم اما نمیدونم چه کاری همین چیزی که میدونم اینه که نمیتونم درستش کنم تمام چیزی که میدونم اینه که تام حالا از من متنفره و دیگه نمیخواد با من حرف بزنه اون کار وحشتناکی رو که کردم به همه گفته و همه رو علیه من کوک کرده همکارای قدیمی دوستام حتی مادرم همه با نفرت بهم نگاه میکنن با تغییر هیچکس به اون گوش نمیده هیچکی اجازه نمیده بهش بگم چقدر متاسفم احساس وحشت میکنم و به شکل معیوسانه احساس گناه فقط نمیدونم کار کردم بیدار میشم و میدونم که این رویا باید ناشی از یه خاطره قدیمی باشه گناهی عتیقه این موضوع به الان مربوط نمیشه دیروز بعد اینکه از قطار پیاده شدم توی ایستگاه آشپوری پونزد بیست دقیقه پرس پرسه زدم نگاه کردم ببینم اون باهام از قطار پیاده شده یا نه اون سرخه اما اثری ازش نبود فکر کردم ممکنه گمش کرده باشم و جایی همین اطراف عات منتظرم واسطه تا من برسم خونه و بیاد دنبالم که بیچارگی به هم دست داد وقتی آرزو کردم کاش می تا خونه بدوام و وقتی می رسم اونجا منتظرم باشه کاش یه جایی که کسی منتظرم باشه از راه میانبار فروشگاه نوشابه های الکلی که مجوز پیال فروشی نداره رفتم سمت خونه وقتی رسیدم خونه خالی بود. احساس جای رو داشت که تخلیه شده انگار کتی رو از دست داده باشم و برای همیشه رفته باشه اما یادداشتی رو پیشخون گذاشته بود که برای نهار با دیمین رفته بیرون و تا یک شنبه شب بر نمیگرده احساس بیقراری کردم، احساس ترس از این اتاق به اون اتاق قدم میزدم چیز نیزها رو برمیداشتم و میذاشتم پایین. احساس می‌کردم چیزی برداشته شده اما بالاخره متوجه شدم که این فقط یه, حسه، یه حسیه که مربوط به منه. هنوز سکوت توی گوشام زنگ میزنه که مثل صدا به نظر میاد. برای خودم یه شراب میریزم و بعدش یکی دیگه و بعدش زنگ میزنم به اسکات. تلفن مستقیم میره روی پیغامگیر. صداش تو پیغامگیر مربوط میشه به دوره‌ی دیگه‌ای از زندگیش. صدایی یه آدم پرمشغله مرد رازداری که همسر زیبایی تو خونه داره بعد از چند دقیقه دوباره زنگ میزنم تلفن جواب داده میشه اما هیچکس صحبت نمیکنه سلام ک ریچل صحبت میکنه ریچل واتسون هم همهمهای در پس زمینه هست صداهایی میاد صدای یه زنگ که داره میگه او مادرش شاید گفتم شما من دیدم که شما زنگ زدین و من متوجه نشدم. به نظر گیج میاد. نه نه من به شما زنگ نزدم. اشتباه شده فقط دستم خورده. متوجه میشم که با من حرف نمیزنه گفتم خیلی متاسفم. بله. لحنش خیلی خونسا و بیروهه. خیلی متاسفم. متشکرم. شما... شما میخواستین با من حرف بزنین؟ نه نه من من باید اشتباهی به شما زنگ زده باشم. این بار با یقین بیشتری میگه. آه. به نظر میرسید دلش میخواد زود تلفن رو قطع کنه. فهمیدم که باید با خانواده‌اش تنهاش بذارم. واقعا غصهش. فهمیدم باید این کارو بکنم اما نکردم. ازش پرسیدم شما آن رو میشناسین آنا واتسون؟ کی؟ منظورتون همسر شوهر سابقتونه؟ بله نه یعنی نه کاملا مگان, مگان مدتی پرستار بچهش بود پارسال چرا میپرسین؟ نمیدونم چرا پرسیدم نمیدونم میپرسم؟ م... میتونیم هم همدیگر رو ببینیم میخوام باتون راجع به چیز صحبت کنم به نظر میاد به تنگ اومده راجع به چی؟ من زیاد واقعا وقت ندارم با تنش به زد آماده بودم گوشی رو قطع کنم که گفت خونه منون پر آدمه پردا خوبه؟ پردا بیا اینجا اصر موقع اصلاح صورتش رو باریده خون روی گونه و یخش خوش شده ماش مرطوبه و بوی صابون و عطر بعد از اصلاح میده سری تکون میده و کنار وایمیسه اشاره میکنه که وارد خونه بشم اما چیزی نمیگه خونه تاریکه، خفه، کیکره های اتاق نشیمن بستن، پرده از بالا تا پایین کشیده شدن، درای کشویی فرانسوی روبه باغم بستن، زرفای لوازم میز و سفره رو پیشخونه آشپز بسخونن، اسکات میگه همه غذا میارن، بهم اشاره کنه تا پشت میز بشینم اما خودش سرپا میمونه، دستاش دو طرفش شل آویزونن، شما میخواستین به من چیزی بگین اون حوشیار نیست به چشم نگاه نمیکنه به نظر میاد از درون متلاشی شده میخواستم راجع به آنا واتسون بپرسم راجع به اینکه نمیدونم رابطهش با مگان چجوری بود با همینگه خوب بودن اخ میکنه دستشو میزه رو پشتی صندلی که جلوشه نه منظورم اینه که اصلا بیزارم نبودن. در واقع خیلی خوب همدیگر میشناختن. ولی ارتباطی نداشتن با هم. حس میکنم شونه خمتر شدن. اون خسته هست. چرا اینا از من میپرسی؟ باید شفاف حرف بزنم. من دیدمش. فکر کنم اون بیرون دیدمش. تو زیرگذر ایسکا اون شب دیدمش. شبی که مگان گم شد. یکمی سرش رو تکم میده. سعی میکنی چیزی رو که من گفتم درک کنه ببخشید دیدینش شما اونجا بودین؟ کجا بودین؟ من من اونجا بودم سر راه هم برای دیدن دیدن چهام شوهر سابقم اما چشاشو محکم فشار میده پیشونیشو میماله یه لحظه اجازه بدین شما؟ اونجا بودین و آن واتسون رو دیدین؟ من میدونم میدونم که آنها اونجا بوده خونش خب چندتا حیاط اون ورتره به پلیس گفته که حدود ساعت هفت رفته ایستگاه اما یادش نمیاد مگانو دیده باشه. دستشو می گیره به صندلی میتونم بگم تاقتش تاق شده شما دقیقا چی دارین میگین؟ من م بودم صورتم با یه شرم آشنا سرخ شده. یادم نمیاد دقیقا فقط این حسو دارم اسکات دستشو بالا میبره. کافیه. دیگه نمیخوام بشنوم. شما مشکلاتی با شوهر سابقتون دارین، با زن جدید شوهر سابقتون. خب واضحه. این کمکی به من نمیکنه. هیچ کمکی به مگان نمیکنه. میکنه؟ خداین شما خجالت نمیکشین. هیچ فکر کردین که من اینجا تحت نظرم؟ این پلیس امروز صبح منو برد برای بازجویی؟ صندلی رو اونقدر محکم هل میده که می درسم بشکنه. خودم رو محکم نگه میدارم که اگه یهو صدای ترقش شنیدم شوکه نشم. و شما با این اراجیف اومدین اینجا؟ من خیلی متاسفم که زندگیتون یه بدبختی لعنتی تمام عیاره اما اعتقاد دارم در مقایسه با زندگی من زنگ تفریحه. بنابراین اگه فکر نمی‌کنین... و با سر به در ورودی اشاره می‌کنه. بله میشم. احساس حماقت میکنم، احساس مزهک بودن و شرمندم. من، من میخواستم کمک کنم، میخواستم. نمیتونین ولی. شما نمیتونین به من کمک کنین. هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه. همسرم مرده و پلیس فکر میکنه من اونو کشتم. صداش بلند میشه. لکه رنگی روی گناهاش ظاهر میشن. اونا فکر میکنن من اونو کشتم. دندوناش روی هم فشار میده و میگه کمال آبداک دیگه مزنون نیست. لحنش خونساس اما داره سعی میکنه خودشو مهار کنه. من میتونم لرزش خشم توی وجودش احساس کنم. میخوام برم جلوی در اما صد راهمه راه همون نیه نوریم نوری هم که تو اتاق بود بسته شده. میپرسه؟ شما میدونین اون چی گفته بوده؟ باشت میکنه به هم و سندلی رو بر میداره. با خودم فکر میکنم البته که نمیدونم. باز متوجه میشم که اون واقعا با من حرف نمیزنه. کمال همه جور داستانی ساخته. گفته مگان خوشحال نبوده. گفته من یه شوهر کنترل کننده و حسود بودم. یه چیوش میگن؟ یه بدرفتار حیجانی. اون لغات رو با بیزاری تف میکنه بیرون. کمال گفته مگان از من میترسیده. اما اون فقط اون یه نفر نیست. دوستش تارا گفته که مگان ازش خواسته کارش رو برش پوشش بده. مگان ازش خواسته راجبه جاهایی که میرفته دروغ بگه. راجبه کارایی که میکرده صندلی رو پشت میز میزاره و صندلی میفته من یه قدم طرف راه رو برمیدارم و بعدش به هم نگاه میکنه میگه من یه مرد گناهکارم صورتش در اثر غم و اندوه در هم پیچیده من واقعا یه جانیم وا لگد صندلی شکسته رو پرت میکنه یه طرفو رو میشینه روی یکی از تا سندلی سالم باقی مونده الافم مردد نمیدونم باید بمونم یا برم دوباره شروع میکنه به حرف زدن صداش اونقدر آرومه که به زحمت میتونم بشنوم میگه گوشیش تو جیبش بوده یه قدم بهش نزدیکتر میشم پیغام من توش بوده آخرین چیزی که بهش گفتم آخرین کلمه ای که ازم خونده برو به درک دروغ گویه حرزه چونش داره میفته روی سینش چونهاش داره میلرزه اونقدر بهش نزدیکم که میتونم لمسش کنم دستمو بلند هم میکنم خودم هم دارم میلرزم انگوشت هم رو روی گردنش تکون نمیخوره تا دورم کنه میگم متاسفم هرچند از شنیدن این کلمه ها شکه شدم از تصور اینکه میتونه میتونست اینجوری صحبت کنه چون می دونم دوست داشتن کسی و گفتن وحشت ناکترین کلمه ها بهش موقع خشم یا ناراحتی چه حسی داره میگم مطن پیام کافی نیست اگه فقط همین همینو دارن کافی نیست ولی فعلا که هست بعدش راست بالا رو نگاه می کنه شونه بالا میندازه و دست منم خود به خود کنار میره برمیگردم گردم پشت میزو میشینم رو بروش به بهم نگاه نمیکنه من انگیزه دارم درست رفتار نکردم وقتی که رفت عکس و درستی نشون ندادم من به موقع به وحشت نیفتادم تا ازش خبر بگیرم به موقع بهش زنگ نزدم خنده ترخی میکنه و طبق حرف کمال همون فهشی که بهش دادم اشاره به بد رفتارین باش داره بعد سرشو بلعه میکنه و به ام نگاه میکنه منو که میبینه یه نوری ایجاد میشه یه امیدی شما شما میتونین با پلیس حرف بزنین میتونین بهشون بگین که این یه دروغه که اون داره دروغ میگه شما لاقل میتونین به اونا یه داستان دیگه بدین بهشون بگین که من عاشقش بودم بگین که ما خوشبخت بودیم میتونم وحشت توی سینم حس کنم اون فکر میکنه من میتونم بهش کمک کنم. اون امیدش به منه و تمام چیزی که من براش دارم. یه دروغه. یه دروغ لعنتی. با بیحالی میگم. حرف من رو باور نمی کنن. اونو حرف من رو باور نمی کنن. من شاید متبرین نیستم. سکوت بین ما متبره میشه و اتاقو پر میکنه. یه مگس با سمارچت جلوی درای فرانسوی وزوز میکنه. اسکات خون خوشگیدهی روی گونش میتونم صدای کشیدن ناخون رو روی پوسش بشنوم. سندلی ماقعه میکشم. باام روی سرامیکاس اون سرش رو میکنه میگه. شما اینجا بودین؟ انگار یه تیکه از اطلاعاتی که 15 دقیقه قبل بهش دادم حالا داره بالا میاد. شبیه که مگانگوم شد. ویتنی بودین؟ به سختی میتونم صداشو از بین صدای ویز ویز و خفهی توی گوشام بشنوم. سر تکم میدم میپرسه؟ چرا اینو به پلیس نگفتین؟ میتونم تیک عصبی ماهیچه فکش رو ببینم. گفتم من, من بهشون گفتم اینو اما ندیدم من, من چیزی ندیدم من چیزی یادم نمیاد. بلند میشه میره سمت درای فرانسوی و پردارو باز میکنه. نور خورشید توی یه لحظه چشممو میزنه. اسکات پشت به من میایسته، دست به سینه. حرفی که میزنه عین واقعیت. شما محص بودین. اما باید چیزی یادتون باشه شما باید برای همین برگشتین اینجا نه؟ برمیگرده رو به من. همینه نه؟ دلیل این اینکه با من تماس گرفتین. شما چیزی میدونین؟ جوری میگه که انگار حقیقت داره. نه سوالی نه اتهامی نه نظریه ای ماشینش ماشین دیدین؟ آره حتما یه ماشین واسگوال کرسه آبی دیدیش من به علامت نسرتک امیدم و اون با ناامیدی دستش رو پایین پایین. اینجوری زود خودتو معاف نکن واقعا فکر کن چی دیدی؟ آن واتسونو دیدی اما چیز دیگه ندیدی؟ تو دیدی؟ چی دیدی؟ آفتاب داری چشم میزنه نا امیدانه سعی میکنم قطعاتی از اون چرا که دیدم به یاد بیارم اما هیچی پیدا نمیشه واقعا هیچی هیچ چیز مفیدی نیست چیزی نیست که بتونم با خیال راحت و با صدای بلند برای کسی بگم داشتم با یکی جر و بحث کردم یا شاید شاهد جر و بحث کسایی بودم توی پله های ایسکا سکندری خوردم مرد موسرخی به بهم کمک کرد فکر میکنم با هم مهربون بود هرچند حالا ازش می‌ترسم میدونم که سرم زخمی شده بود لبم زخمی شده بود بود یادمه که تو زیر گذر بودم. اونجا تاریک بود. من وحشت زده بودم. گیج. صداهایی شنیدم. شنیدم که یکی اسم مگان صدا می زد. نه. یه رویا بود. این واقعی نبود. من, من خون و یادمه. خون روی سرم. روی دستام. آن رو یادمه. تام رو یادم نمیاد. کمال. اسکات یا مگانم یادم نمیاد. داره بهم نگاه میکنه. من تا چیزی بگم. میتونم خورده چیزایی بهش بدم تا راحت بشم اما هیچی ندارم. میگه اون شب زمان کلیدی میشینه پشت میز. حالا به من نزدیکتره. پشتش به پنجره است. برق عرقی روی پیشونی و بالای هست و داره میلرزه. انگار که در سر تب باشه. این زمان اون اتفاقه. اونا فکر میکنن توی این زمان اتفاق افتاده. نمیتونن مطمئن باشن. ادامه نمیده، اونا نمیتونن مطمئن باشن به خاطر وضعیت بدن یه نفس عمیق میکشه، اما فکر میکنن که اون شب بوده یا با فاصله کمی بعد از اون، برمیگرده به حالت خودکار ماشینیش، حرف زدم با اتاق نه با من، در سکوت گوش میدم که داره به اتاق میگه علت مرگ ضربه به سر بوده و جمجمش از چندین جا شکسته، نه تجاوز جنسی یا لاقل چیزی که قابل تایید باشه به دلیل وضعیتش وضعیت بدنش که از بین رفته وقتی به خودش میاد برمیگرده سمت من وحشت و بیچارگه از چشش خونده میشه میگه اگه شما چیزی یادت بیاد باید به من کمک کنی خواهش میکنم سعی کن یادت بیاد ریچل شنیدن اسمم از زبونش منو از خود بیخود میکنه و احساس میکنم چقدر بدبختم تو قطار تو راه خونه به چیزی که گفت فکر می‌کنم تجربه میکنم اگه این حقیقت باشه یعنی به خاطر اینه که من نمیتونم بذارم ذهنم تو این دام بیفته یعنی این بخشی از ناخودآگاه ذهنه که من ناامیدانه نمیتونم بهش برسم میدونم که یه چیزی رو در این زمینه حس میکنم. چیزی که نمیتونم بهش اسم بدم و به چنگم نمیاد یعنی قدرتمندتر از احساسه اگه چیزی توی ذهنم هست پس شاید کسی بتونه به من کمک کنه تا از ذهنم بکشمش بیرون کسی مثل یه روان پیزشک، روان درمانگر، کسی مثل دایک.